منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالودم به بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات بخواست جاممه و گفت ای پوشیدن مراد دلز تماشای باغ عالم کیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن به میپرستی از آن نقش خود زدم بر آب که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن به رحمت سر زلف تو واسقم ورنه کشش چون نبود از اون سود چه سود کوشیدن انان به میکده خواهیم تافتین مجلس که وعظ بی واجب است نشنیدن ز خط یار بیاموز مهربار رخ خوب که گرد عارض خوبان خوش است گر دیدن مابوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زرد فروشان خطا است بوسییدن